ا میشه بهشیر و براشت خواست برد مطالبه حق بالتون بکنه از آن را شنید او میخوایی این پا بر جا باشه یا حید برند بکشند که که مخالبهه بد مخالفه, مخالفه باز. نور الله میکنن با فاصل دو نه؟ میخوام از آن باش. اسلام سوری باشه همون اسلام سوری را مراعات کردن کار را به جایی رسون که افتردن ناس بردر سوری الله الا سراسه اون سراسه شد به اندازه مثل میلیون میون تقییه این کار را رکه بله اگه از هم اول بستقب و تعم و فلان این ها مشغول می شودیم زیاد می شود همین زیادی هم از دست